خب تلاش میکنی ببینی پس عشق برای همگان است پوزه به شکل خنده در میآید، در جرس تخمینت زدند در تدایی خود تخمیر شدی مذکر شو تو بازرگانی پس پیل از ستان تا در قصبه با جرعی آب تاخت زنی من قصیدم سر از دلی جان بیرون ببر جواهر هم نمیکنی، مجازاتت با راهب قلعه است من از این قماشم در راه اپیشم خود مؤدبان سوگند خورده ماهوارهی مات بر گرد مؤذن مؤسس هر چیز ساخته شده از ماهیچه و پنبه که مترادفش میتوان گفت شاید قایقی بیسرنشین باشد یا پرندهی که به جوجه قضا می دهد طلوع تلسم میوهی آماده دارد شبیه به سیب همونطور که من اکنون با مشتی باز وارد می شدم. تو جانوری خود جانور شناسی در سینه سینمایت از ملال به شعر سقوط می کنم. من باید چه کنم شنوایی چشایی در قرفه پادزه فروش پنبه توی فرشته را میزنند اما این توی قلاب مغزت در گنج خبرهترین شیخ شبیخون خوون میخورد این حرف معلم همه ماست دست انسان از آرنج تا سرانگشتان برای این ساخته شده است که شرارت آفتاب در سختترین لحظات با هم بودنمان چون از دار فنا قوس کرده بیرون بیاید و به ساعت خود نگاه کند و از ملاحت خود متحیر شود، بوغز کرده و خاننده از تپه بالا رود و بتابد. و دکمه دکمه پیراهن زمان را بگشاید و پیچک خشک شعور را حرست کرده و خشکل با رسمی به صحنه بیاورد، بفروشد و خود فروخته شود. تو مخنثی بالشت را عواسط زندگی ژاندارمیت به دست میآوری و روزی میرسد که ژاندارک را وارد معرکه می کنی از باتلاق بیرون میآید تا اکثریت را التیام بخشد جمع می کنم آن دو چیز را افعی با پوست اطلسی از صخرهای آن کمترین کنیز بیرون میآید و در دهان باز من فرو میرود همه چیز اینگونه است، آنگاه که قمر سفید رنگ جهان ما با قیصر جهان شما در پشت پد چه بیا! آب را خورده درختی شناور در اوج جوانی، میان توهی، و عرب، تا پنج شمرده، از ریسمان انفجار بالا رفته، با بنیاد پلید پسر عزیز شهر در حلق آتشین خانه دیدار کرده امت ما میداند در شیش مادر چه محلول کرده است اینها همه برای تولید است تو آشنایی از خودی سنگ در دهان جویدن خود را به برغ زدن انتظار را انتخاب کن انجیر نجات فقط گوشت ستارگان را نجات می‌دهد. روحشان در انکسار می ماند گستت را چیز فرود ببر و از درون لذت ببر منتظر اندوه ماندن تو معنیسی انسانیت خود شایسته ترین نشانه است که بر رمیدن احوالات موجوداتی چون تو می‌توان گذاشت من آزمایش موسا هستم، خار در پای عشق، موی کنده ای بوزینه بود، گوش تا گوش تلایی رنگ و تکیده در حال بوسیدن و بیوفا و بیهوش. باعث حیرت هست که رنگ من این گونه در نور میدرخشد درخشد. بهبود یافتن تو نصف مسئله است. در بلخ چشم گاوی دیدم در بساط فروش ناگهان زرد و خوشبو در آتشکدۀ خاموش یک درخت گل به یادم آمد و نام تو یا خود واقعیت من که بهانه میآورم بهره بردن نصف مسئله است تمام توانم را جمع میکنم تا آن تا به تابحال دست آوردم در یک جا جمع کنم می لغزم و میریزد نقشی بییا ایجاد می شود صدادر از آن اندامی بیقامت و قواره می سازد و من از آن نقابی برای شناختن. زبان مشکل من است در کهرووا میخوابیم این را روی تکه کاغذی نوشتم و به پیکان بستم تا شاید در تابستان بر تنه درختی با خیلی قلیز جاری شود. از بیراه رفتم ریشه حلاکت در راه مقصد را کج می کند و همان کار را با من میکند کند که گل با طولش از اینها فراوانند تو خود پزشک شو یا به گوش برو و لیس بزن در مریض خانه چشمی بزرگ و عروس آشنا شدن بوسیدن و جدا شدن با هزار به سوی توهی دستی و در انتهاب سوی موجودی زنده و نااشنا تا کنون بیشتر راه را آمده ایم. ده عدد از هر چیز به من بده این توقع من را آشکار می کند لغزنده و نگرنده تا به ترازوی آب و پیاز می دانم کدنی برگ خزان فرو میافتد قده گرم و تپنده در جان ما می جوشد. مرگ عجول است. این پایان نامه من خواهد شد. پایان نین هستند آنان که مخلوقهای اهریمن را در پی ساختن چیزهای خوب از پحلورم می دهند. تو چرا خورم نیستی؟ از پریدار شدن زودهنگام می میترسی پتیاره آسیب میزنی شب رو اگر در شهرت را بکشایی کسی می‌پرستد دیگری مشغول به چیزی و زیباب نازیبا آویزان است پرسه دستمالی شده ما هم دیگر سر را بالای آب نگه نمیدارد. بیا قرارداد ببندیم تا در این فاصله واژگونی جایی دارد این خود مسئله است با قارتگر شادی در تاریکی یاوه گفتن، این هم مسئله است، در چراگاه آبی و سیاه دامن جادو جاویدان رفتن، اینها با هم جور می شوند. چکاوک و جلبک به شکل صلیب که باعث حدث و گمانند،